بسم الله الرحمن الرحيم النسب نسبات القسم الأول قسم أذان القائدة العامة للنسب درداس أذان قاعدة أمي وكليرو درداس نسبات ميارة مصر اسم مسؤول مش مصري بغداد بغدادي عرب عربي نحو نحوي جوهر جوهری فن فنی اون اسمی که ازش اسم منسوب درست میکنن بهش مین منسوب اليها و اونی که یای نصبت هم بش اضافه میشه بهش میگن اسم منسوب القائده المنصوب ما لحق آخره یا مشدددت مخصور ما قبلها للدلالتی على نسبته الى المجردی منها منصوب آن است که ملحق شود به آخر آن یا مشدد مکسور هست ما قبل یای مشدد منوند مصری بغدادی عربی نحوی جوهری فنی پس یای مشددی به آن ملحق می شود که ما قبل این یا مشدد مکسور هست لدلالتی على نسبته الى المجرد منها دلالت این اسم منصور دلالت بر نسبت به مجرد منها میکنه یعنی موقعی که میگیم مصری یا تجید دارو مجرد از یا هست موقع که میدیم مصری یعنی نسبتش میدیم به مصر به مصری که مجرد از آن هست بغدادی موقعی که شخصی رو میگیم بغدادی یعنی اون شخص رو نسبت دادیم به بغدادی که مجرد از اون یای نسبت هست پس اسم منصوب اسمی است که ملحق میشه به آخرش یای مشددی که ما قبل اون یای مشدد کسر داریم الهاظ معنایی معناي دلالت بر نسبت دادن اسم منصوب بمنسوب إليها نقطة بسيار زيباره در قبرقيا وردس يعمل المنصوب عمل الصفة المشبهة فيرفع الظاهر والمضمر يجي منسوب عمل صفة المشبهة عن اسم الظاهر وزميره مرفوم جازانات و این مرفوع نائب فاعل حساب میشه. وصاجه از الحدیقه تو نظامها. نظامو مرفوع هست عاملش اندلوسیج هست که اسم منصوب هست. پس اسم منصوب قبل از اینکه اسم منصوب بشه علام بوده ولی علام دیگه صفت شده و عمل صفت مشابهه رو انجام میده مصر اسم اعلن اما بعد از اینکه که مصری دیگه همه چیز تغییر می کند حاضر رجل ابوه اینجا ابو مرفو شده است این قاعده کلی نسبت و اسم منسوب. ما یستثنا من القائده الان از این قائده کلی استثناهایی وجود داریم قائده کلی می که ما در آخر اسم یای مشدد ما قد مکسور اضافه می کردیم ولی بعضی ها حسهایی می بینیم رخ یا اسم هست. ان نشب او الل محبومی به تا نسبت به کلمه که با تاای تعنییس پایان یافته، از هندسه، حنده ساعه. این چهار کلمه آخرشون تای تعنییس هست. حالا موقع میخوایم اسم منصوب از اینا درست کنیم تای تانیس حصف میشه چون قائده میگه الاسم المختوم و بطای تحذف من هتا او اندن نصبی اله اسم مختوم اسمی که خاتمه یافته با تای حس میشه از اون تا هنگامی که نسبت بدی به این کلمه پس زمانی که اسم منصوب درست کنیم از کلمه‌ای که ختمه به تا هست، تاء تأنیث تاش حذف میشه. القاهره اسم منصوب میشه القاهری هندسه هندسی فاكهه فاكهی ساعه صاعی این قاعده ی اولی بود که در رابطه با اسم مذکر توضیح دادیم. خود اسم مقصور رو در قایده قبلی توضیح داد که چی اسمی هست. انده سب و المقصور نسبت دادن به اسم مقصور. دقیقی می هم از اسم مقصوری اسم مقصور درست کنید. بحثگی دارد که اون اسم مقصور ما سه حرف یا چهار حرف یا بیشتر داشته باشد. چهار گروه از امسل را آورده است. قینا تیما این گروه اول کسی حرفی هست بنها و شبره چار حرفی کسالا و قلاما چار حرفی که حرف دوزونش حرکت داره مصطفا و مستشفا پنج حرفی و شیش حرفی بیایم روی قائده قائده 28 کتاب اذا اریدن نصبو الى المقصوری نو لرا ای زمان که خاصه شه نسبت بدیم به اسم مقصور علیفشو نگاه نگه علیف, علیف مدد نظر هست خیلی مهم هست فا امکانت فالیفتن اگر علیف حرف سوام باشه حرف سوام کلمه باشه مانند قناع و قماع مثلی گروه اول قلبت وابن تبدیل به واب میشه در اسم منصوب قناع میشه قناوی قما تموی الف اسم مقصور تبدیل به شد در منسوب. و اگر کانت رابعهان و ثانیه ساکن، اگر الف اسم مقصور حرف چارم کلمه قرار گرفته باشه و حرف دوم کلمه ساکن باشه و ثانیه ساکن و حرف دوم کلمه ساکن باشه، جا ز حصف و قلبها وافن، جا از حست. الیف رو کنیم او قلبوها وامن یا جایز است که الیف رو تبدیل بواف کنیم مانند بینها و شبرا در بینها و شبرا الف حرف چارم کلمه هست و حرف دوم کلمه بینها نون شبرا با میبینیم که ساکن هستند اینجا ما میتونیم الف رو در اسم منصوب حصف کنیم بگیم بنهی بنها اسم منصوب شو بگیم بینهی، شبری و میتونیم علیف رو تبدیل بواب کنیم بنها بینهاوی، شبرا، شبراوی پس این چه زمانی بود؟ زمانی بود که علیف حرف چهارم بود و حرف دوم کلمه یا حرف دوم اسم مقصور ساکن بود اما و امکانت رابعه تن و ثانیه متحر اگر الف اسم مقصور حرف چارم کلمه بود ولی حرف دوم کلمه حرکت داشت مانند کسلا و قلمه در کسلا و قلمه الف حرف چارمه ولی حرف دوم کلمه در کسلا سین هست در قلمه لان حرکت داره اینجا دیگه نه اینجا واجب هست که الف حذف بشه میگه ان و ان کانه رابعهن و متحرک اگر حرف چارم بود و دوممی متحرک مانند کسلا و قلما او كانت خامستا او سادستا یا علیف اسم مقصور حرف پنجم کلمه بود او سادستا یا حرف ششم کلمه بود در این حالت یعنی زمانی که علیف حرف چارم بود و حرف دوم کلمه حرکت داشت یا الف حرف پنجم بود یا الف حرف شیشون بود وجف وجبا حسبه واجب حسبه الف اسم مکسور حسب بشه به کسلا که میشه کسلی قلما میشه قلمی چرا در این اینجا الف حذف شد خاطر این که درست الف حرف چهارم بود اما حرف دوم کلمه حرکت داشت در مصطفی به خاطر این الف حذف میشه که علف اسم مکسور حرف پنجم هست پس میشه مصطفی در اسم منصوبه در مستشفا به خاطر این کلیف هرچی شونه بازم واجب هست که حصف بشه در اسم منصوبش میشه مستشفی این بود قائده ای اسم مقصور اما زمان تیخان از اسم منقوسی اسم نسبت رو درست کنیم چیز طور درست میشه؟ النصبو علال منقوسی نسبت دادن به منقوص السدي العمى الشجي إن اسمه منقوص هست این چند حالت داره ادایی میتونیم اسم منقوص رو بگیم ادایی الرمي الرامي الرموي, الرامي میتونیم اسم منقوص رو الرامي الراموي السامي السامي الساموي سگرو ازمثله را آورده المهتدی المرتجی المستقصی خب بخاطر اینکه تکرار بشه بیایم رو قاعده اذا اريد النصب الى المنقوص ينظر في یاءه زمانی که خاصه بشه اسم منصوبی درست بشه از منقوص یا به عبارت نسبت داده بشه به منقوسی ينصب الى المنقوص نسبت داده بشه به منقوص ينظر في یاءه یاء اسم منقوص نگاه کرده می فإن كانت ثالثة اگر يا يه اسم منقوس حرف السفوم كلمة بود قلبت واوان وفتح ما قبلها يا تبديل بواو مشه وما قبلش فتح داده مشه در اسم منصوب السدي مشه السدوي العمي العموي الشجي الشجوي وإن كانت رابعة جاز حذفها أو قلبها واوان مع فتح ما قبلها و اگر یای اسم منقوس حرف چارون کلمه بود اینجا جائزه که یا رو حسف کنیم و جایز هست که یا رو تبدیل به واب کنیم و ما قبلش رو فتح بدیم معنیم در که یا حرف چارون هست اینجا میتونیم در اسم منصوب یا رو حسف کنیم بگیم ادعی همون یای تجدیدار اسم منسوب فقط یاریم و یای خودش رو حذف کنیم ادداعی که من اسم منصوریش بیم ادداگی و میتونیم یای خودش رو یای منقوسر رو تبدیل به واف کنیم ادعا عوید و ابرهم ما قبلش فتحه بدیم ادعا عوید الرامید میتونیم بیم الرامید یعنی یای الرامید یای اسم منقوسر حذف کنیم و میتونیم یای اسم منقوسر تبدیل به واف کنیم ما قبلش فتحه بدیم بیم الراموی، السامی، السامی، الساموی پس این بود زمانی که حرف یای یا اسم منقوس حرف چارم قرار گرفته بود این برخوردو باش داریم و امکانت خامس او ساده اگر یای یا اسم منقوس حرف چارم یا حرف حرف پنجم یا شیشم کلمه بود واجب حصف واجب است که در اسم منصوب یای یا اسم منقوس حذف شود المهتدی، المرتجی المستقصی در المهتدی و المرتجی یا حرف پنجم کلمه است در, در المستقصی حرف شیشون هست زمانی که اسم منصوب درست کنیم یای منقوص هست میشه و همون یای تجیدار اسم منصوب فقط میاد المهتدی میشه المهتدی المرتدی, المرتدی المرتدی المستقصی المستقصی این بود از اسم منشوبی که از منقوص درست میشد